سیزده راز موفقیت تجارت امپراتوری ها و ادیان جهانی بالاخره راه تک تک انسان های خردمند ساکن تمام قاره ها را به دنیای بزرگی که ما امروز در آن زندگی می کنیم بازگشود این روند گسترش و همگرایی به شکل یک خط راست و بلا انقطا نبوده. با نگاه وسیع تر به تبدیل انبوه فرهنگ های کوچک به معدودی فرهنگ های گسترده و در نهایت به یک جامعه جهانی واحد در میابیم که این همه شاید نتیجه اجتناب ناپذیر پویای تاریخ انسانی بوده. اما گفتن اینکه جهانی شدن جامعه اجتناب ناپذیر است به این مفهوم نیست که نتیجه نهایی لزوما باید همان جامعه فراگیری باشد که ما اکنون در پیش رو داریم ما قطعا نمیتوانیم نتایج دیگری متصور شویم چرا این زبان انگلیسی است که تا این حد فراگیر است و نه زبان دامارکی؟ چرا در حالی که در حدود دو میلیارد مسیحی و یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون مسلمان در دنیا وجود دارد، فقط صد و پنجاه هزار زرتشتی وجود دارد و هیچ منوی وجود ندارد. اگر می توانستیم زمان را ده هزار سال برگردانیم و این روند را بارها و بارها دوباره به جریان اندازیم، آیا باز هم شاهد گسترش یگان پرستی و افول دوگان پرستی می بودیم؟ از آنجایی که ما نمیتوانیم چنین کاری بکنیم، پس نمیتوانیم جواب درستی به این سال بدهیم. اما بررسی دو ویژگی مهم تاریخی میتواند سر نخی به ما بدهد. یک سفسته بازنگری هر مقطعی در تاریخ یک تقاطو است. برای پیمودن گذشته به حال یک مسیر واحد وجود دارد، اما انشعابات بیشماری به آینده یافت میشود. بعضی از این راهها پنهان‌تر، هموارتر و روشن‌ترند که احتمال انتخابشان بیشتر بوده، اما گاهی تاریخ یا مردمی که تاریخ را می‌سازند چرخش‌های غیرقابل انتظاری می‌کنند. در ابتدای قرن چهارم میلادی، امپراتوری روم با افق گسترده ای از گزینه‌های دینی مواجه شد. این امپراتوری می‌توانست به تعدد پرستی سنتی و متنوع خود بچسبد. اما امپراتور کنستانتین با نگاهی به قرنی گسیخته به دنبال جنگ های داخلی شاید به این فکر میکرد که یک دین واحد با یک آموزه روشن میتوانست قلمرو رو, و رو را متحد کند او میتوانست یکی از آینهای موجود را به عنوان باور ملی خود انتخاب کند منویت، میترائیزم، آیسیس، سایبل، زرتوش، دهودیت و حتی بودیسم اما چرا او عیسی را انتخاب کرد ؟ آیا در یگان پرستی مسیحیت چیزی بود که او را شخصا تحت تاثیر قرار داد یا اینکه شاید چیزی در دین وجود داشت که برای مقاصد او مناسب بود ؟ آیا خود او تجربه ای از این داشت یا اینکه یکی از مشاورانش توصیه می کرد که مسیحیت به سرعت در حال گسترش است و بهتر است که او بر آن موج سوار شود؟ مورخین تنها میتوانند در این باره فرضی بافی کنند، اما نمیتوانند جواب قاطعی بدهند. آنها میتوانند توضیح دهند چطور مسیحیت بر امپراتوری روم چیره شد، اما نمیتوانند تشریح کنند چرا درست این انتخاب خاص متحقق شد. تفاوت میان توصیف چطور و چرا در چیست؟ توصیف چطور نوعی بازآفرینی مجموعه ای از اتفاقات خاص است که در آن یک واقعه به واقعه دیگر می انجامد اما توصیف چرایی به این معنی است که در جستجوی روابط علت و معلولی آن سلسله اتفاقات خاص و مستثنا کردن تمام وقایع دیگر باشیم گروهی از محققین پاسخهای جبرگرایانه برای رخدادهایی مثل ظهور مسیحیت دارند آنها سعی می‌کنند تاریخ انسانی را به کارکرد نیروهای زیستی، زیست محیطی یا اقتصادی تنزل دهند. آنها استدلال می‌کنند که عواملی در شرایط جغرافیایی، ژنتیک یا اقتصادی روم منطقه مدیترانه وجود داشت که ظهور دین یگانه پرست را ناپذیر می‌کرد. اما اغلب مورخین نسبت به چنین نظریات جبرگرایانه ای شک شکاک هستند. یکی از خسیزه علم تاریخ به عنوان رشته علمی این است که هرچه بهتر راجع به یک دوره تاریخ بدانیم دشواری بیشتری خواهیم داشت تا توضیح دهیم که چرا وقایع درست در آن مسیر خاص رخ دادند و نه در مسیرهای دیگر. آنها که فقط اطلاعاتی سطحی از یک دوره معین دارند بیشتر برانند تا تمرکز خود را تنها بر آن احتمال بگذارند که بعدها متحقق شد. آنها یک روایت دقیقا همینطور بود ارائه می دهند تا با یک باز توصیف کنند که آن رخداد اجتناب ناپذیر بود. آنهایی که اطلاعات عمیقری از یک دوره دارند بسیار بیشتر راجب راههایی که پیموده نشد مطلعند. در واقع آنهایی که بهترین اطلاعات را از دوره ای داشتهاند یعنی آنهایی که در آن زمان زندگی می کردند، از همه بیاطلاعترند. برای یک رومی معمولی در دوران کنستانتین آینده مبهم بود یک قاعده آهنین تاریخی این است که آنچه که بعد از وقوع اجتناب ناپذیر مینمود در آن دوره کاملا ناروشن بوده امروزه هم همینطور است. آیا از بحران اقتصادی جهانی خارج شده ایم یا باید منتظر بدتر از این هم باشیم؟ آیا چین به شکوفایی خود ادامه خواهد داد تا اینکه به یک عبرقدرت تبدیل شود؟ آیا آمریکا برتری خود را از دست خواهد داد آیا قیام یگان پرستی بنیادگرا موج نهزت آینده خواهد بود یا اینکه فقط یک گرداب محدود بدون دراز مدت خواهد ماند آیا در آستانه فاجعه زیستمحیطی محیطی هستیم یا بهشت به دستاوردهای فنی برای تمام این سوالات می توان بحث های جالبی را دامن زد اما راجع به هیچ چیز با قطعیت نمی توان سخن گفت چند دهه آینده مردم نگاهی به گذشته خواهند انداخت و پاسخ این سوالات را بدیهی خواهند یافت لازم است حکید کنیم که امکاناتی که تحققشان برای انسانهای معاصر تقریبا نامحتمل به نظر می اغلب تحقق یافتند وقتی کنستانتین در سال 306 بر تخت پادشاهی نشست مسیحیت چیزی بیش از یک فرقه زیرزمینی شرقی نبود اگر کسی در آن زمان می گفت که مسیحیت به دین دولتی روم بدل خواهد شد به همان اندازه به او میخندیدند که امروز کسی بگوید در سال ۵ هارکریشنا دین رسمی آمریکا خواهد شد. در اکتبر سال 1913 بولشویک ها یک جریان رادیکال کوچک روسی بودند. در آن زمان هیچ فرد عاقلی پیشگویی نمیکرد که فقط تا چهار سال دیگر آنها بر کشور چیره خواهند شد. اگر کسی در قرن 600 میگفت گفت که یک گروه عرب بادی نشین به زودی گستری وسیعی از اقیانوس اطلس تا هند را فتح خواهد کرد باز هم مزهکتر به نظر می آمد. در واقع اگر ارتش بیزانس می توانست یورش های اولیه را خنسا کند شاید اسلام یک فرقه گمنام باقی می ماند که فقط معدودی کارشناس از آن آگاه می بودند. آنگاه برای محققین خیلی ساده میتوانست باشد تا تو توضیح دهند چرا یک ایمان بر پایه وح توسط یک تاجر میان سال اهل مکه هرگز نمیتوانست امکان گسترش داشته باشد. اما منظوری نیست که هر چیزی امکان پذیر است. عوامل جغرافیایی، زیستی و اقتصادی محدودیت خود را اعمال می کنند. اما این محدودیت فضای خالی ژرفی را برای اتفاقات قافل گیر کنندهی که خارج از محدوده های قوانین جبری عمل می کند. این استنتاج، افراد بسیاری را که مایلند تاریخ جبرگرایانه عمل کند، معیوس می کند. جبرگرایی از آن جهت جذابیت دارد که مهر تایید بر اعتقادات و دنیای ما می و آن را طبیعی، اجتناب ناپذیر و همچون واقعیتی تاریخی مینمایاند. اینکه ما در دولت ملی زندگی میکنیم، اقتصادمان را بر اساس بنیادهای کاپیتالیستی سازماندهی می کنیم، مشتاقانه به حقوق بشر باور داریم همه اموری بدیهی و طبیعی هستند. اعتراف اینکه حرکت تاریخ جبری نیست به مفهوم اقرار این حقیقت است که این صرفاً یک تصادف است که اکثر مردم امروزه به ناسیونالیسم، کاپیتالیزم و حقوق بشر اعتقاد دارند. تاریخ نمیتواند به گونه ای جبری توصیف شود و پیشگویی شود زیرا فاقد نظم معینی است. نیروهای بسیار زیادی در کارند و کنش متقابل آنها به قدری پیچیده است که حتی تغییرات ناچیزی در نیروها و چگونگی کنش متقابلشان میتواند به تفاوت‌های چشمگیری در پیامدها ها و این تمام قضیه نیست تاریخ چیزی است که آن را نظام آشفته سطح دوم مینامند دو شکل از نظام آشفته وجود دارد سطح اول آشفتگی آن است که واکنشی به بینی هایی که راجبان می کنیم نشان نمی دهد. یک مثال هواست که سطح اول نظام آشفته است. اگرچه متأثر از عوامل بسیاری است اما ما می مدل کامپیوتری بسازیم که به تواند هرچه بیشتر عوامل دخیل را بسنجد و پیش بینی شناسانی بهتر و بهتری به دست دهد. سطح دوم آشفتگی این است که به بینی هایی که درباره اش می شود واکنش نشان می دهد و از این رو هیچگاه نمی تواند پیشبینی درستی به ما دهد. بازار یک مثال از نظام آشفتگی سطح دوم است. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک برنامه کامپیوتری تدوین کنیم که بهای نفت فردا را تا صد در صد به درستی پیشبینی کند؟ بهای نفت بلا فاصله نسبت به این پیش بینی واکنش نشان خواهد داد که در نتیجه اشتباه حساب در خواهد آمد. اگر بهای جاری نفت 90 دلار برای هر بشکه است و برنامه کامپیوتری دقیق ما پیش بینی کند که بها به 100 دلار خواهد رسید، آنگاه تاجران برای خرید نفت حجوم خواهند برد تا بتوانند از این افزایش بها سود ببرند. در نتیجه این بها همین امروز به 100 دلار برای هر بشکه افزایش خواهد یافت نه فردا. اما فردا چه اتفاقی خواهد افتاد کسی نمیداند. سیاست هم مثال دیگری از نظم آشفته سطح دوم است. بسیاری شوروی شناسان را به باد انتقاد میگیرند زیرا آنها نتوانستند انقلابات 1989 را پیش بینی کنند و کارشناسان امور خاورمیانه را زیر سوال میبرند زیرا نتوانستند انقلابهای بهار عرب 2011 را پیش بینی کنند. اما این انتقادات غیر منصفاند. انقلاب بر حسب تعریف غیر قابل پیش بینی است. یک انقلاب قابل پیش بینی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. چرا که نه؟ تصور کنید که در سال 2010 هستیم. و یک کارشناس نابغه علوم سیاسی در همکاری با یک نابغه علم کامپیوتر یک الگوریتم خطا ناپذیر را در یک چارچوب خوشنما به وجود بیاورند و آن را به عنوان انقلاب اختار کن به بازار عرضه کنند. اینها خدمات خود را به رئیس جمهور حسنی مبارک مصری پیشکش می‌کنند و در اضای طلب یک پیشپرداخت سخاوتمندانه به او می‌گویند که بر اساس هایشان یک انقلاب قریب الوقوع در مصر زمانی در سال آینده به وقوع خواهد پیوست. عکس مبارک چه خواهد بود؟ او به احتمال قوی مالیات ها را پایین می آورد، میلیاردها دلار بین شهروندان بزد و بخشش می کند و نیروهای پلیس امنیتی خود را هم تقویت می کند. اقدامات پیشگیرانه کار خود را می کند. آن سال می آید و میرود و در کمال تعجب انقلابی اتفاق نمی افتد. مبارک اجرت پرداخت شده را باز می کند و رو به این فریاد می زند الگوریتم شما بی ارزش بود. من می توانستم با این پول یک قصر دیگر برای خود بسازم. اما محققین در دفاع از خود استدلال می کنند که انقلابی رخ نداد زیرا ما آن را پیشگویی کردیم. مبارک در حالی که به نگهبانان اشاره می کند که محققین را دستگیر کنند میگوید شما پیشگویانی هستید که چیزهایی را پیشگویی می کنید که رخ نخواهد داد. من می توانستم ده ها دستگاه اینچنینی را در بازار قاهره با یک مشت پول خورد بخرم. پس چرا باید تاریخ بدانیم؟ تاریخ در تفاوت با فیزیک و اقتصاد برای پیش بینی درست حوادث نیست. ما تاریخ را به این دلیل نمی خانیم تا بتوانیم آینده را پیش بینی کنیم، بلکه برای اینکه افق های خود را گسترش بدهیم و درک کنیم که وضعیت کنونی ما نه طبیعی است و نه اجتناب ناپذیر. در نتیجه بدانیم که امکانات بسیار بیشتری از آنچه که تصورش را می‌کنیم در برابر خود داریم. برای مثال مطالعه اینکه چطور اروپاییان بر آفریقایی‌ها مسلط شدند ما را قادر می‌سازد تا درک کنیم هیچ چیز طبیعی یا اجتناب ناپذیری در سلسله مراتب نژادی وجود ندارد و اینکه دنیا می توانست به گونه دیگری سازماندهی شود. دو، تاریخ کور ما نمیتوانیم گزینه‌هایی را که تاریخ انتخاب می‌کند توضیح دهیم اما می چیزی بسیار مهم راجب آن گزینه‌ها بگوییم گزینه‌های تاریخ برای پاسخگویی به منفعت انسان ها صورت نگرفتند هیچ مدرکی مبنی بر اینکه رفاه انسانی به ناگزیر با تداوم تاریخ بیشتر می شود وجود ندارد شواهدی هم در دست نیست که نشان دهد فرهنگ هایی که برای انسان ها مفید هستند لزوماً موفقیت آم و باید توسعه یابند و فرهنگ های کم منفعتر باید منقرض شوند. مدرکی هم وجود ندارد ممری بر اینکه مسیحیت گزینه بهتری از منیت بوده یا اینکه امپراتوری عرب از امپراتوری ساسانی پارسی مفیدتر بوده. گواهی بر این نیست که تاریخ در جهت منفعت انسان پیش می رود زیرا ما معیاری عینی برای محاسبه چنین منفعتی نداریم. فرهنگ مختلف خوب را به گونه های متفاوتی توصیف می کنند و ما معیاری عینی برای قضاوت میان آنها نداریم. فاتحان طبعا اعتقاد دارند که تعبیر خودشان درست است. ولی چرا ما باید آنها را باور کنیم؟ مسیحیان گمان می‌کنند که پیروزی مسیحیت بر مانوویت برای بشریت سودمند بوده. اما اگر ما به جهانبینی مسیحیت اعتقاد نداشته باشیم، دلیلی هم نداریم تا با آنها موافق باشیم. مسلمان ها فکر می‌کنند که شکست امپراتوری ساسانی به دست عرب برای بشریت مثبت بود. اما این تنها وقتی صدق می‌کند که جهانبینی مسلمان ها را بپذیریم. شاید منفعت همه ما در این می بود که مسیحیت و اسلام در فراموشی باقی می یا شکست می‌خوردند. محققین محققین هرچه بیشتری گمان می کنند که فرهنگ‌ها نوعی افونت یا انگل ذهنی هستند که انسان‌ها را بدون اطلاعشان به عنوان میزبان انتخاب کردند. انگل عالی مثل ویروس‌ها در درون بدن میزبانشان رخنه می کنند، خود را تکثیر می کنند و از یک میزبان به میزبان دیگر انتقال می و از آنها تغذیه می کنند آنها را تضعیف می کنند و گاهی حتی از پا در می آورند چنانچه میزبان به اندازه کافی زنده بماند تا انگل را انتقال دهد انگل توجهی به موقعیت میزبان خود ندارد عقاید فرهنگی درست به همین صورت در روان انسانها زندگی می کنند آنها خود را از بدن یک میزبان به بدن میزبان دیگری انتقال می دهند و گاه گاه آنها را تضعیف می کنند و گاهی هم از پادر می آورند یک اعتقاد فرهنگی مثل اعتقاد به ملکوت مسیح بر فراز ابرها یا بهشت کمونیستی، اینجا بر روی زمین می تواند انسان را وادار کند تا زندگیش را به ترویج آن عقاید اختصاص دهد حتی به بهای مرگ خودش انسان ها می میرند، اما عقاید رواج مییابند بر اساس این نگرش فرهنگ ها آنطور که مارکسیست ها فکر می کنند های ابداعی برای سوء استفاده از دیگران نیستند بلکه انگل های ذهنی هستند که بر حسب تصادف بروز می کنند و پس از آن از تمام آنهایی که با آن آلوده شدهاند استفاده می کنند. این نگرش که گاهی میمتیک خانده می شود، چنین فرض می کند که تکامل فرهنگی بر اساس تکررور واحد های اطلاعاتی فرهنگی به اسم میم ها قرار دارد. درست همانطور که تکامل موجودات زنده بر پایه تکرار واحد های اطلاعاتی موجود زنده به نام ژنها استوار است. فرهنگ موفق آنهایی هستند که علا رقم نفع و زیان میزبان انسانی خود در باز تولید الگوهای خود موفقند. اغلب محققین علوم انسانی نظریه میمتیک را مورد تحقیق قرار می دهند و استفاده آنها از قیاسهای خام زیست برای توصیف فرایندهای فرهنگی را تلاشی آماتوری ارزیابی می کنند. اما بسیاری از همین محققین از همزاد میمتیک یعنی اندیشه پسانوین یا پست مدرنیسم استقبال می کنند. متفکرین اندیشه پسانوین به جای میم ها از گفتمان ها یا دیسکورس به عنوان سنگ بنای فرهنگ ساخن میگویند. اما آنها هم فکر می کنند که فرهنگ ها خود را بدون در نظر گرفتن منافع بشریت رواج می دهند. متفکرین اندیشه پسانوین مثلا ناسیونالیسم را همچون طاعون کشنده‌ای توصیف می‌کنند که در قرون 19 هم و 20 هم تمام جهان را به خود آلود و سرمنشأ جنگ، سرکوب، نفرت و قتل آن بود. در لحظه‌ای که کشوری آلوده به آن بود، کشورهای همسایه گرفتار همان ویروس می‌شدند. ویروس ناسیونالیسم خود را مدعی منافع انسان ها معرفی می کرد، اما در اصل به دنبال منافع خود بود. بحث های مشابهی در میان علوم اجتماعی تحت پوشش نظریه بازی رواج دارد. نظریه بازی یا گیم تیوری توضیح می دهد که چگونه الگوهای فکری و رفتاری آسیب زننده به تمامی بازیگران، در نظامی با چندین بازیگر ریشه میگیرد و گسترش می یابد. مسابقه تسلیحاتی یک نمونه شناخته شده است. بسیاری از مسابقات تسلیحاتی تمامی طرف‌های درگیر را به ورشکستگی می‌کشاند بدون آنکه در موازنه قدرت تغییری جدی به وجود آورد. وقتی پاکستان هواپیماهای پیشرفته می‌خرد، هند هم همان کار را می‌کند. وقتی هند بمب هسته‌ای می‌سازد، پاکستان هم همان کار را می کند. وقتی پاکستان نیروی دریاییش را گسترش می دهد، هند هم همان کار را می کند. در پایان این روند موازنه قدرت همانی خواهد ماند که از اول بود اما در خلال آن میلیاردها دلار که می در آموزش و بهداشت سرمایهگذاری شود روی سلاح جنگی گذاشته می شود. اما ایستادگی در مقابل تحریکات مسابقه تسلیحاتی دشوار است. مسابقه تسلیحاتی یک الگوی رفتاری است که خود را تحت معیار تکاملی بقا و بازتولید همچون ویروس از کشوری به کشور دیگر گسترش می‌دهد و به هر کسی آسیب می‌رساند. به خاطر بسپارید که مسابقه تسلیحاتی مثل ژن نیست که دارای آگاهی باشد و آگاهانه در جستجوی بقا و بازتولید خود باشد. شیو آن نتیجه غیر عمدی یک نیروی محرکه قدرتمند است تفاوتی نمی کند چه نامی برام بگذاریم نظریه بازی، اندیشه پسانوین یا میمتیک پویای تاریخ معطوف به ارتقای بهروزی انسانی نیست هیچ پایه و اساسی برای این تفکر وجود ندارد که موفقترین ترین فرهنگ های تاریخ لزوماً برای انسان خردمند بهترین فرهنگ‌ها بودند تاریخ همچون تکامل نسبت به خوشبختی افراد موجودات زنده بی تفاوت بوده و افراد انسانی به سهم خود معمولاً بسیار نادانتر و ناتوانتر از آنند تا بتوانند در راستای منافع خود بر مسیر تاریخ تأثیر بگذارند. تاریخ از یک مقطع دیگر پیش می رود و به دلیل مرموزی ابتدا این مسیر و سپس آن مسیر را انتخاب می کند. در حدود سال 1500 میلادی تاریخ مهمترین چرخش خود را داشت و نه تنها سرنوشت خود بلکه سرنوشت تمامی حیات بر روی کره زمین را رقم زد. ما از آن تحت عنوان انقلاب علمی یاد می‌کنیم که در اروپای غربی آغاز شد یعنی در شبه جزیره وسیعی در رأس غربی آفریقا که تا آن زمان نقش مهمی در تاریخ بازی نمی‌کرد. چرا از میان تمامی مکان‌ها انقلاب علمی در آنجا آغاز شد، نه در چین یا هند؟ چرا در نیمه هزاره دوم میلادی آغاز شد و نه دو قرن قبل یا سه قرن بعد؟ ما به درستی نمیدانیم؟ محققین دهها ها نظری ارائه دادند، اما هیچ کدام چندان قانع کننده نیست. تاریخ طیف بسیار گسترده ای از امکانات و احتمالات را در خود جای میدهد و بسیاری از احتمالات هرگز متحقق نمی شوند. می توانیم تاریخ را به گنه تصور کنیم که از نسلی به نسل دیگر به پیش رفته باشد و انقلاب علمی را دور زده باشد درست همانطور که می توان تاریخ را بدون مسیحیت بدون امپراتوری روم و بدون سکه طلا تصور کرد